قسل یازده روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود وقتی از دعا فراغت یافت یکی از شاگردان به او گفت خداوندا همانطور که یحیا به شاگردان خود یاد داده است تو هم دعا کردن را به ما یاد بده عیسی به ایشان فرمود هر وقت دعا میکنید بگویی ای پدر نام تو مقدس با پادشاهی تو بیاید نان روزانی ما را هر روز به ما بده و گناهان ما را به ما ببخش زیرا ما نیز همه کسانی را که به ما بدی کردن میبخشیم و ما را از ها دور نگهدار. سپس به ایشان گفت فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد. و نیمهشب شب پیش آن دوست برود و بگوید، ای دوست، سه قرس نان به من قرض بده، یکی از دوستانم که دست سفر بود به خانه من وارد شده است و چیزی ندارم پیش او بگذارم. و او از داخل جواب بدهد، مزاحم من نشو. حالا در قفش شده است و من و بچه هایم به رخت خواب رفته ایم و نمیتوانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم. بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای او حاضر نکند همان سماجیت او را وادار خواهد کرد که برخی زد و را دوستش احتیاج دارد به او بدهد پس به شما میگویم تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد بجویید که پیدا خواهید کرد بکوید که در به روی شما باز خواهد شد چون هر که بخواهد به دست می آورد. و هر که پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می شود. آیا در میان شما پدری هست که وقتی پسرش از اون ماهی بخواهد به عوض ماهی ماری در دستش بگذارد؟ یا وقتی تخم مرغ بخواهد اقربی به او بدهد؟ پس اگر شما با اینکه که جایزل خطا هستید می دانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به آنانی که از او تقاضا میکنند عطا خواهد فرمود عیسی یک دیو لال را از شخصی بیرون میکرد و وقتی دیو بیرون آمد مرد لال شروع به حرف زدن کرد و مردم حیرت کردند اما بعضیها گفتند او به واسطه بالزبول، رئیس شیاطین دیوها را بیرون میراند دیگران از راه امتحان از او تقاضای آیاتی آسمانی کردند اما او افکار آنان را درک کرد و فرمود هر سلطنتی که علیه خودش تقسیم شود رو به خرابی میگذارد و خانواده‌ای که دو دستگی در آن باشد سقوط خواهد کرد همچنین اگر شیطان علیه خود تفرق بیاندازد، سلطنتش چطور برقرار خواهد ماند باری شما ادعا دارید که من به وسیله بالزبول دیوها را بیرون می‌رانم اگر من به وسیله بلزبول دیوها را بیرون میرانم، یاران خود شما به چه وسیلهای آنها را بیرون میرانند؟ آنان ادعای شما را تکذیب خواهند کرد. اما اگر با قدرت خداست که من دیوها را بیرون میرانم، یقین بدانید که پادشای خدا به شما رسیده است. وقتی مرد زورمندی که کاملا مسلح است از قلعه خود نگهبانی می کند دارای او در امان است. اما وقتی کسی زورمنتر از او به او حمله کند او را از پای در میآورد و تیرها و زره ای را که تکیگاه او هستند میبرد و داراییش را تاراج می کند. هر که با من نباشد بر ضد من است و هر که با من جمع نکند پراکنده می سازد. وقتی روح ناپاکی از کسی بیرون میآید در جستجوی استراحتگاهی در بیابانهای بیا و علف سرگردان میشود وقتی جایی را پیدا نمیکند میگوید به منزلی که از آن بیرون آمدم باز میگردم پس بر برمیگردد و آن خانه را جارو شده و منظم و مرتب میبیند او میرود و هفت روح بدتر از خود را جمع میکند و آنها وارد میشوند و مستقر میگردند و در آخر حال روز آن مرد از گذشته اش بدتر می شود. در حالی که ایسا صحبت می کرد، زنی از میان جمعیت با صدای بلند گفت، خوشا به حال آن مادری که تو را زایید و به تو شیر داد. او متقابلا فرمود خیر، خوشا به حال آن کسانی که کلام خدا را بشنوند و آن را به جا بیاورند. وقتی مردم در اطراف ایسا ازدهام کردن، او به صحبت خود چنین ادامه داد. مردمان این زمانه چقدر شریرند. آنها آیتی میخواهند اما تنها آیتی که به ایشان داده خواهد شد، آیت یونس نبی است. چون همانطور که یونس برای مردم نینوا آیتی بود، پسر انسان نیز برای مردم این زمان آیت دیگری خواهد بود. در روز داوری ملکه جنوب با مردم این روزگار زنده خواهد شد، با آنان را متهم خواهد ساخت چون او از آن سر دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و شما بدانید آنکه در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. مردم نینوا در روز داوری با مردم این روزگار زنده خواهند شد و علیه آنان شهادت خواهند داد چون مردم نینوا در اثر پیام یونس توبه کردن و آنکه در اینجاست از یونس بزرگتر است. هیچ چراغ را روشن نمی کند که آن را پنهان کند یا زیر تشت بگذارد، بلکه آن را روی چراغ پایه قرار می دهد تا کسانی که وارد اتاق می شوند نور را ببینند. چراغ بدن تو چشم تو هست، وقتی چشمانت سالم هستند تمام وجود تو روشن است اما وقتی چشمهایت معیوب باشند تو در تاریکی هستی، پس چشمان خود را باز کن، مبادا نوری که داری تاریکی باشد، اگر تمام وجود تو روشن باشد و هیچ قسمت آن در تاریکی نباشد، وجود تو چنان نورانی خواهد بود که گویی چراغی نور خود را بر تو می تاباند. وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه داد، یکی از فریسیان او را به صرف غذا دعوت کرد، او وارد شد و نشست، فریسی با تعجب ملاحظه کرد که عیسی قبل از غذا دستای خود را نشست. اما ایسای خداوند به او گفت ای فریسیان شما بیرون پیاله و بشقاب را تمیز می‌کنید، در صورتی که در درون خود چیزی جز حرص و شرارت ندارید. ای احمخواه، آیا آن کسی که بیرون را ساخت درون را هم نساخت از آنچه درون زرف ها دارید خیرات کنید. که همش برای شما پاد خواهد شد. وای به حال شما ای فریسیان، شما از نعنا و صداب و انواع ادویه ده یک می دهید، اما از اجرای ادالت و محبت به خدا قافل هستید. اینها چیزهایی است که شما باید بدون قافل ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید. وای به حال شما ای فریسیان شما صدر مجلس را در ها و سلام و تعارف را در بازارها دوست دارید وای به حال شما شما مانند هایی هستید که هیچ نشانه‌ای روی آنها نیست و مردم ندانسته و ناشناخته روی آنها راه می‌روند یکی از معلمان شریعت در جواب عیسی گفت ای استاد وقتی چنین حرف‌هایی می‌زنی به ما توهین می‌شود عیسی در جواب فرمود: بلی ای معلمان شریعت، وای به حال شما نیز چون بارهای بسیار سنگین بر دوش مردم می‌گذارید و خودتان یک انگشت هم به آن بار نمی‌زنید. وای به حال شما که آرامگاه‌های پیامبرانی را که پدران شما کشتن می می‌سازید و به این وسیله اعمال پدرانتان را تایید می‌کنید و بر آنها سهم می‌گذارید چون آنان مرتکب آن قتل‌ها شدن، و شما اینها را بنا میکنید این است که حکمت خدا میفرماید برای ایشان پیامبران و رسولان میفرستند بعضی را میکشند و بعضی را آزار میرسانند تا مردم این زمانه مجبور شوند جواب خون تمام پیامبرانی را که از اول پیدایش دنیا ریخته شده است بدهند از خون هابیر گرفته تا خون زکریا که بین قربانگاه و اندرون مقدس معبد حلاق شد، آری، بدانید که مردم این روزگار جواب همه آنها را خواهند داد. وای به حال شما ای معلمان شریعت، شما کلید در معرفت را بر می دارید، خودتان وارد نمی شوید و آنانی را که می وارد شوند باز می وقتی عیسی از آن خانه بیرون رفت، ملایان و فریسیان با خشم غضب دور او را گرفتند. و او را در موضوعات بسیار سال پیچ نمودن و در کمین بودن که او را با سخنان خودش به دام بیان لازن.